موسیقی به نام خدای یگانی مهربان افسانه‌ها بزرگترین و غنیترین بخش گنجینه ادبیات عامیانه هر سرزمینی به شمار می‌رند به همین علت هم دانشمندان و پژوهشگران توجه خاصی به دنیای پر رمز و راز افسانه‌ها داشته و از آنها عنوان، منبعی تازه برای تدوین تاریخ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استفاده میکنند. دانشمندان و پژوهشگران همچنین افسانهها ها رو منبعی غنی و ارزشمند در پژوهش های جامعه شناسی می دونن. چرا که در افسانهها تمام فراز و و جریان های اجتماعی و تمام حوادثی که در اجتماعات بشری رخ داده خود مردم به تصویر کشیدن. در بر برمیه این هفته یه هزار افسانه افسانی به نام پرنسس مالین براتون نقل میکنم بلگرفته از کتاب بهترین افسانه‌های دنیا اثر برادران گرین با ترجمه از هیروس شبانی. در سالهای خیلی دور روزی پادشاهی به خاستگاری دختر پادشاه قدرتمند دیگه ای رفت دختر پرنسس مالین نام داشت و خیلی زیبا و مهربون بود با این حال پدرش با این وصلت مخالفت کرد و به پرنسس مالین اجازه نداد تا با شاهزاده جوون جوان ازدواج کنه اون مایل بود دخترش همسر شخص دیگری بشه اما پرانسیس مالین و شاهزاده جوون به حدی به همدیگه علاقمند بودند که پرانسیس مالین نزد پدرش رفت و بون گفت که دلش نمیخواد به جز شاهزاده با کس دیگه ای کنه. پادشاه وقتی این حرف رو از زبون دختر شنید از شدت ناراحتی و عصبانیت دستور داد که برج بلندی بسزن که حتی زره از عشقه خورشید و ما هم در اون نفوذ نکنه و وقتی کار ساخت این برج به پایان رسید پادشاه دخترش رو به حضور طلبید و به اون گفت تو باید هفت سال تمام در این برج زندگی کنی و بعد از پایان هفت سال من به سراغت میام تا ببینم دست از لجاجت و سری برداشتی یا نه بعد پادشاه دستور داد که آب و غذا به اندازه هفت سال به داخل برج حمل کنن و پرنسس مالین و ندیمش رو به داخل برج ببرن چند دقیقه بعد از ورود اونها به داخل برج مأموران پادشاه جلوی در خروجی برج رو دیوار کشیده روزها گذشت پرنسس مالین اغلب به کنار برج میومد و با صدای بلندیاری میخواست اما کسی صدای اونرو نمیشنید خلاصه اون دو دختر بیچاره کاری از دستشون ساخته نبود جز گریه مزاری بسیار طولانی سپری شد و پرانسس مالین و ندیمش از کم شدن ذخیره غذا و آبشون متوجه شدند که زمان پایان حبس طولانیشون نزدیک شده اونا هر لحظه منتظر آزادیشون بودن اما هیچ صدای پتک و چکشی به گوش نرسید و هیچ سوراخی توی دیوار به چشم نمی انگار خود پادشاه هم فراموش کرده بود که قرار بعد از هفت سال به سراغشون بیاد مدتی دیگه هم گذشت آزغوی اونا فقط برای چند روز دیگه باقی مونده بود و چیزی جز مرگ وحشتناک در انتظارشون نبود پرانسیس مالین به ندیمش گفت دیگه وقت اون رسیده خودمونو از این کیوار نجات بدیم ندیمش با نومیدی پرسید چجوری بانوی من؟ این دیوارها اون سخت و من که؟ پرانسس به تندی کلامون رو کرد و گفت نگران نباش، نگران نباش اگه سعی کنیم حتما از اینجا نجات پیدا میکنیم و بعد کارد بزرگی برداشت و شروع به خراش دادن ملات دوری یکی از سنگها کرد و وقتی خسته شد عمو به ندیمش داد و از اون خواست کار رو ادامه بده. بعد از مدتی طولانی اونا موفق شدن یه سنگ، بعد هم دو سنگ و بعد هم سنگ سوم رو از جا در بیارن. و خلاصه بعد از سه روز زحمت و تلاش مداوم اشعه ای از نور فضای تاریخ داخل برج رو روشن کرد. اونا به تدریج سوراخ رو اونقدر بزرگ و بزرگتر کردن که تونستن از میون بیرون رو نگاه کنن آسمون آبی بود و نسیم ملایمی به صورتشون میبزید اما اما همه چیز چقدر افسرده و قمزده به نظر میرسید قلعه پادشاه ویران شده بود شهرها و دهکده ها تا اونجا که چشم کار میکرد سوخته و با خاک یکسان شده بودن. حتی یه انسان زندان دیده نمیشد. به زودی سوراخ دیوارون قدر عریض شد که پرانسس مالین و ندیمش دونستن خودشون رو از میونون بیرون بکشن. اما اونا کجا را داشتن که برن؟ بله. دشمنان تمام اون سرزمین رو فتح کرده و پادشاه و رعایاش رو به اسارت در و با خود برده بودن پرنسس مالین و ندیمش رفتن تا بلکه سرزمین جدیدی پیدا کنند. اما هیچ جا نه سرپناهی پیدا میشد و نه آدمی زادی که لغمه نونی به اونا بده گرسنگی اونا رو مجبور کرد که از ریشه ی سوخته ی بوتهای خار و علف خودشون رو سیر کنن پرنسس مالین و ندیمش بعد از یک راه پیمایی طولانی سرانجام به سرزمین حاصلخیزی خیزی رسیدن اونا به در خونه ها رفتن تا بلکه کاری پیدا کنن اما هیچ کس حاضر نبود اونا را استخدام کنه و یا به اونها ترحم و دلسوزی کنه پرنسس به ندیمش گفت آه، بهتره به قصر پادشاه این سرزمین بریم اونجا حتما کاری برای ما پیدا میشه به هر دو به طرف قصر پادشاه رفت افتادن. اما اونجا هم دست رد به سینه اونا زدن و درست وقتی که میخواستن ناامید از دروازه قصر برگردن آشپز قصر به اونها گفت اگه بخاین میتونین توی قصر بمونین و به عنوان خدمتکار آشپزونه کار کنین خب حالا تا اینجای افسانه رو من براتون تعریف کردم اما اجازه بدید براتون بگم که پسر پادشاه این سرزمین همون شاهزادهی بود که زمانی با پرنسس مالین این ای ما نامزد شده بود. اما حالا دیگه دختری یکی از بزرگان این سرزمین به نامزدی اون در آمده بود. دختری که به همون اندازه که پلید و سنگ دل بود، زشت و کریه منظرم بود. وقتی دو مسافر افسانی ما، یعنی پرانسس مالین و ندیمش از راه رسیده بودن روز عروسی شاهزاده و نامزدش تعیین شده بود و عروس رو به قصر آورده برده بودن اما دخترک به خاطر چهره زشتش در اتاق رو به روی خودش پسته بود و حاضر نبود کسی اونو ببینه به همین خاطر به پرانسس مالین که حالا دیگه خدمتکاری بیش نبود دستور دادن که قضای اونو به اتاقش ببرد وقتی که روز معود رسید و قرار بود زوج سلطنتی به کلیسا برن عروس به حدی از چهره زشت خودش خجالت میکشید که می مورد تمسخر مردم کوچه و بازار و مهمون قرار بگیره. بنابراین به پرانسس مالین گفت دخترشان دخترشان بخت و شانس بزرگی به تو رو کرده. پرنسس مالین با تعجب پرسید شانس بزرگ چه شانسی؟ عروس گفت پای من پیچ خورده و اصلا نمیتونم را برم پس تو باید لباسای عروسی منو بپوشی و به جای من به سابری چون این افتخار بزرگی به همین سادگی نصیب هر کسی نمیشه دخترچون این شانس بزرگیه که به تو رو کرده پرنسس مالین با شنیدن این حرف گفت من من اقبال و افتخاری رو که متعلق به من نباشه نمیخوام و تا با پیشنهاد سکه های تلا از طرف عروس هم وسوسش نکرد و سرانجام عروس زشت با عصبانیت فریاد زد اجرس فرمان من اطاعت نکنی همین الان در یه چشم هم زدان دستور میدم سر از تن جدا کنن فرانسیس مالین به بناچار قبول کرد بعد لباس عروسی رو پوشید و به تالار رست رفت مهمانان حاضر در جشن عروسی از زیبایون شگفت زده شدن و پادشاه و شاهزاده رو برای چنین حس انتخابی تحسین کردند زمان رفتن به کلیسا رسیده بود شاهزاده با دیدن عروس با تعجب به خودش گفت آه، اون توی این لباس عروسی چقدر به مالین عزیز من چه پیدا کرده اون قدر که فکر میکنم خود اونه اما نه اون مرده و در اون برج سنگی سالهاست که پوسیده و از بین رفته بعد از این یادآوری تلخ و غمنگیز شاهزاده استقبال عروسش رفت و اونها به طرف کلیسا به راه افتادند توی راه که میرفتن از کنار یه بوته خار گذشتن و عروس با دیدن اون به زبان بیگانه‌ای شروع کرد به خوندن شعری و گفت بوته خار آه ای بوته خار آیا فراموش کردی اون روز را که ریشه‌های آبدار تو را پختم به جای قضا شاهزاده با شنیدن این شعر از عروسش پرسید این شعر چی بود عروس جواب داد چیزی نبود فقط داشتم به پرانسس مالین فکر میکردم شاهزاده از اینکه دید همسر آیندهش پرانسس مالین رو میشناسه شگفت زده شد ولی چیزی نگفت تا اینکه به پله های کلیسا رسیدن و عروس زیر لب گفت ای پله های کلیسا تمنا میکنم نشکنید امروز. چون عروس واقعی نمی آید در این روز. شاهزده پرسید. تو چی گفتی؟ عروس جواب داد. چیزی نگفتم فقط یاد پرنسس مالین افتادم شاهزاده پرسید. مگه پرنسس مالین رو می اونو دیده بودی؟ عروس گفت. خیر شاهزاده چطور ممکن اونو بشناسم من من فقط دربارش چیزهایی شنیدم همین در این موقع شاهزاده زنجیر طلای نشانی از جیبش بیرون آورد و اون رو به عروس داد و اونا وارد کلیسا شدن تا کشیش اونها رو به عقد هم در بعد از پایان مراسم مزدبا شاهزاده و عروس به قصر برگشتن اما عروس در این مدت حتی یک کلمه حرف نزده بود به محض اینکه وارد قصر شدن پرنسس مالین به بحانه از شاهزاده جدا شد و یک راست به سراغ عروس زشت رو که منتظر اومدن پرنسس مالین بود رفت و لباسها و جواهرات زیبا رو به اون داد و لباس های کهنه خودش رو پوشید اما زنجیری رو که داماد به اون هدیه کرده بود پیش خودش نگه داشت. عروس زشت رو نقابی به چهرش زد تا صورتش معلوم نشه و نیرنگی که بکار بسته برملا نشه. شاهزاده با دیدن عروس پرسید. موقعی که داشتیم از جاده عبور می کردیم به اون بوته خار چی گفتی؟ عروس با توجه پرسید. بوته خار؟ کدوم بوته خار؟ من با هیچ بوته خاری صحبت نکردم شاهزاده با شنیدن این حرف گفت باشه اگه چون این کاری نکردی پس تو عروس واقعی من نیستی عروس بلافاصله از اتاق خارج شد و به جستجوی پرنسس مالین که توی آشپزخونه قصر در حال کار کردن بود رفت و از اون پرسید که به بوتهٔ خار چی گفتی تو بعد دوان دوان به اتاق شاهزاده برگشت و کلماتی رو که پرنسس مالین بر زبون آورده بود تکرار کرد. شاهزاده پرسید: خب حالا بگو ببینم وقتی داشتیم از پله‌های کلیسا بالا می‌رفتیم به اونها چی گفتی؟ عروس با تچ گفت: به پله‌های کلیسا من با هیچ پله‌ای حرف نزدم. شاهزاده دوباره گفت: پس تو عروس واقعی من نیستی. این بار هم عروس به سراغ پرانسس مالین رفت و پرسید که در اون موقع چی گفته و با گرفتن پاسخ از پرنسس مالین به اتاق شاهزاده برگشت و گفت ای پله های تمنا ها نشکنید امروز چون عروس واقعی نمی آگد در این روز شاهزاده گفت خوب حالا اون زنجیری رو که به تو دادم چیکار کردی؟ عروس گفت زنجیر؟ کدوم زنجیر تو که به من زنجیر ندادی؟ شهزاده گفت اگه من به تو زنجیری ندادم پس تو عروس واقعی من نیستی و بعد از عروسش خواست تا نقاب از شهره برداره و عروس که ای نداشت نقاب از شهره زشت و کری خودش برداشت شهزاده با دیدن اون فورا خودش رو عقب کشید و فریاد زد تو! تو چی هستی؟ از کجا اومدی؟ دختر زشت رو داد. من عروس واقعی تو هستم اما چون می ترسیدم مردم منو مسخره کنن و به من بخندن نقاب از چهره بر نداشتم و خدمتکار آشپزخونه رو فرستادم که به جای من به کلیسا بیاد شاهزاده گفت خدمتکار آشپزخونه؟ اون اون امن کجاست؟ زود برو اونو به اینجا بیار عروس سنگل و زشت رو از اتاق بیرون رفت و به نگهبانان غصت گفت که خدمتکار آشپزخونه یه جادوگر بدجنسه و اونو باید از قصر خارج کرده و سر تنش جدا کنن ملازمان و نگهبانان قصر به سراغ پرنسس مالین یا همون خدمتکار آشپزخونه ی غصر رفتن و اونو کشون کشون به طرف در خروجی قصر بردن فرانسیس مالین افثانی ما که دید نزدیک جونش رو از دست بده با صدای بلند فریاد زد و کمک خواست طوری که شاهزاده صدای اونو شنید و با عجله از اتاقش بیرون اومد و به نگهبانها دستور داد که فورا دخترک رو آزاد کنن نگهبانان مشعل به دست وارد شدن شاهزاده دور گردن دخترک زنجیر طلایی خودش رو که جلوی در کلیسا داده بود دید و با خوشحالی فریاد زد تو؟ تو، تو عروس واقعی منی همونی که همراه من به کلیسا اومدی بیا، همراه من بیا و بعد اونو به قصر برگردن چند دقیقه بعد از اون پرسید توی مسیر کلیسا تو چند بار از پرنسس یاد کردی آه، اون زمانی نامزد من بود اگه، اگه امکان پذیر بود قسم میخوردم که تو همون پرانسس مالینی چون خیلی به اون شواهده داری، خیلی زیاد دخترک لبخندی زد و گفت قربان من پرانسس مالینم همون که هفت سال توی تاریکی اون برج زندانی بود و مدتها گرسنگی و تشنگی رو تعمل کرد و در فقر و نداری به زندگی خودش ادامه داد اما امروز خورشید بختم دوباره درخشید این این واقعا من بودم که همراه تو به کلیسا آمدم و من بودم که تو با اون ازدواج کردی بله به این ترتیب شاهزاده جوان بالاخره عروس واقعی خودش پرنسس مالین رو پیدا کرد و تا آخر عمر به خوبی و خوشی با اون زندگی کرد این چه شدید افسانه پرنسس مالین بود برگرفته از کتاب بهترین افسانه‌های دنیا اثر برادران گریم و با ترجمه از هروس شبانی برادران گریم افسانه‌ها رو بازمانده چکیده و خلاصه ای از اسطوره های کهن میدونستند و تو معتقد بودند که اثر بررسی بررسی و باسازی قصه ها و افسانه ها میشه اساتیر و قهرمانان قدیمی رو از نو زنده کرد هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالحبور ویراستار سید فریبرز نوربخش نور بخش اجرا مهران دوستی صداوردار سمانه محمودیان تلیه کننده زهرا عبدالله زاده سانه دیگر بدرون